این مسئله هفتخان در ظاهر مسئله نجات است مسئله نجات طرح می شود مسئله نجات این است که در یک نفر توانایی یک ناتوانی را نجات میدهد و این ایده در ادیان فرمهای مختلف گرفته است که یکی اینی که در اسلام و در اسلام و یهودیت و اینها مردم جاهلند و و خودشون ناتوان در اجرای اموری بینش در امور خدا یک نفر را می که اینها را از این جهالت نجات بدهد در مسیحیت مردم همه گناه و هرچی هم می گناه است و این گناه پتریشون هست اینست که خدا یک نفر را پرستد که این پسرش ایسا باشد که مردم را با قربانی کردن او مردم را از گناه نجات بدهد این است که اون اونهایی که منجی نجات دهنده از جهالت هستند سعی میکنند که همیشه انسان ها را جاهل بکنند و در جهل نگه دارند تا اینی که این تئوریشان جور در بیاد یعنی اینی که بتوانند محمد رو به عنوان راهاننده از جهالت نشان بدهند این چنین فکری همیشه ایجاب میکند که مردم را جاهل نگه دارند همجور مسیحیت ایجاب میکند که همیشه مردم را گناهکار نگه دارند تا اینی که او منجی از گناه باشه خلا این داستان را اگر دقت بکنیم این مسئله منجی به شیوهی در هفتخان تر هست ولی جواب ولی فکری که در این داستان هفتخان هست پوغلاده با این تهوری های منجیگری و ناجی ها که اسلام و مسیحیت عرضه میکنند فرق دارد وقتی خبر تیرگی چشم و اسارت که و سپاهیان ایران به زال میرسد زال پیکریابی خدای خدای ارتا، ارتای خوشه سیمر در گیتیست گفته پیکریابی اوس این در شاهنامه به چشم نمی خورد ولی دقیق که بخوانی فرزند اوس شیر او را خورده است و ما مام، ماما مادر و دایه اوس این حتی در شاهنامه به طور آشکار می آید. این است که این است که این دار که در واقع همان سیمرغ هست رستم را فرا میخواند و به او میگوید من تو را پروردم تا جامه جم یا چشمی را که بیواسطه جهان را میبیند به هر انسانی هدیه بدهید این رابطی سیمور در دادن در خرد را می دهد. نه دانش خرد چشم بیننده را میده. خرد اندیشنده را هدیه میداد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس مرحوم نیست اونیست تابه نیست هر کسی با چشم خودش می دهد. ببینید این تفاوت با همه اون تهوری های که در این ادیان آمده است این جامجم دادن این چشم گونه دادن همون معنای جامجم را دارد که ما این را در سخنرانی دیگری کاملا دقیقا بحث خواهیم کرد رستم بخشنده جام جم است بخشنده چشم خورشید گونه به هر کسی است یعنی چی چشمی که در هر کسی هست در او بسیج میکند تا خودش ببیند خردی که در او هر کسی هست بر می که اون خرد خودش در برای مسائل بیاندیشد او نمی دیگران را نجات دهد بلکه هر کسی با خرد و چشم خودش با خرد خودش خودش را نجات میدهد. برای ما دشوار است که اندیشه رستم زورمند و پهلوان را با رستمی که سرچشمه استقلال بینش هر انسانی پیوند بدهیم مثلا ما این چه تصویری از پهلوان نذریم ببینید اینجا پهلوان امروز بحث روشنگر و اینها مطرح شده است این بحثی است که هزارها در فرهنگ ایران به صورت بسیار جرفی ترک بوده است رستم فرزند جفت سیمرغ این رسالت را دارد که برود به اونهایی که از جان مردم نگهبانی میکنن چشمهای مستقل برای دیدن بدهد خردهای مستقل برانگیزد که خودشان راجع به و راجع به جی و عجی زندگی و زندگی زندگی فضایی و زندگی زداری خودشان بیندیشند و بیابند ببینید این تصویر ما از پهلوان تصویری است که سپس پیدایش یافته است بویژه در دورهٔ هم که پهلوان در واقع زیر, زیر دست اشراف و موبدان و شاهان قرار میگرفت چونکه اون نقش بیدار کننده خرد اون نقش دهنده چشم خورشیدگونه از او گرفته شده بود این موبد بود که از این, از این به بعد آموزه زردوشت را به همه میداد. این حق پهلوان لقش شده بود یعنی پهلوان حق نداشت این نقش رو بازی بکنه پهلوان باید چی فقط مجری باشد دورمندی باشد که برای هر هرچی شاهد دستور داده دست اجرا کنه این چنین آرمانی ایرانی از پهلوان نداشت پهلوان چنان که در این داستان دیده می شود، روشنگر به معنای انگیزنده خرد مردم به خود اندیشی. انگیزنده چشم مردم به از خود دیدن از خود بودن است این پهلوانی چی پسی شد جمع نیرومندی تن و روان یا تن و خرد با هم است اصلا واژهٔ نیرو به معنای یوغ است یعنی هماهنگ شدن دو چیز و پیدایش یک نیروی آفریننده است نیرو معناش هنوز در کردی معناش یوغ است و این برمیگردد به ایده بنیادی فرهنگ ایران که دو چیز باید با هم هماهنگ بشوند هم روش بشوند تا ایجاد آفرینندگی تا اصل آفرینندگی بشویم این است که خرد با تن جان ترا خرد تراوش جان است این جان باید با تن با هم دیگر نیرو بشویم یوق بشویم تا چی بشویم تا پهروان بشویم آرمان فرهنگ ایران این گونه نیرومندی را در تاثیر پهلوان با هم میآمیخت ببینید این فرد را بعد از این سپاس موبد زردشتی میاد میگوید نه من آموزه زردوش را به مردم میدم مردم باید با آموزه زردوش بیاندیشند طبق آموزه زردوش بیاندیشند اون خرد از خود اندیش از خود بودن دیگر لغو شد و تو هم چنین نقشی را دیگر حق نداره بازی کنی مسئله در اینجا می شود زورمندی پهلوان که در اختیار موبه در اختیار آموزه زردوش می نقشی را که رستم در هفت خانش بازی میکنه چیز اپراس ببخشید اسپندیار در هفت خانش بازی میکنه این اونجا مجاهد است رستم پهلوان است این دو نقش کاملا مختلف است که در, در کاربرد واژه پهلوان این دو نقش با هم مشتبه ساخته می شود اسفندیار مجاهد است رستم پهلوان است پهلوان نیرومندی یه خرد و نیرومندی تن با هم است رستم برای این رسالت را از ذال داد که برود شاه و نگهبانان ایران را همه را چشمانشون را از سر اندازه بین بکند و بینا بکند و خردشون را از سر اندیش و خودبین، از خود بیننده بکند حالا. نیاز بینش با دیده خود با چشم خود نیاز به گستاخی و دلیری و یقین از نیرومندی تن و از نیرومندی روان و خرد دارد ببینید اینجا بایستی خرد و نیروی تنش را نیروی خرد و نیروی تنش را با هم جفت کند و خودش را گستاخی چی هست؟ گستاخی گسترش خود است تخم خود است دلیلی گسترش تخم که در خودش هست این تخم، بعدش خواهم دید، بهمن و ارتا هستن چنین پهلوانی خودش سرچشمی بینش از راه جستجو بود و نیازی به موبد و آخوند و قشر و قرآن و گاتانه نداشت ببینید به کلی مفهوم دیگرش، پهلوان را به که تقلیل دادیم به زورمند که فقط عوامر را از بالا اجرا می این به کلی با مفهوم پهلوان که ایرانی داشته است فرق دارد این است که زال زر پیکریابی سیمرغ در گیتی و فرزند سیمور قیامبر نیست فرزند خداست کسی که خودش خود همین زال شیر فرزانگی را از پستان خدا نوشیده است شیر نوشیدن یعنی آبی به تخ دادن این اصل اندیشه پیدایش بینش بینشاست در ایران شیر خدا که مادر است نوشیدن تخم انسان تخم مردم تخم مردم پدیدار میشه این می شود بینش اندیشه از پیدایش بینش این بود چنین زالی به رستم شیوه اندیشگی را یاد میدهد که مادرش به او یاد داده است. سیمر وقتی که زال را به سام می سپارد میگوید یکی آغاز ماقش کن از روزگاه پلوی خدامندن خیلی خوب است در خانه خداماندن فوقالعاد خوب است ولی برای تو بهتر است به گیتی بروی و چیکار کنی نمیگوید بیای پهلوی من من امر و حکم به تو میاد میدم من به تو آموزه یاد میدم که چیکار باید بکنی نه بلکه میگوید برو و خودت یکی آزمایش کن از روزگار این است که خدای ایران به هر انسان میده نمیگوید من به تو کتاب به مقدس میدم نمیگوید من به تو قرآن میدم من به تو گاتا میدم من به تو تورات میدم نه میگوید یکی آزمایش کن از روزگاه رو راه جستجو در تاریکی را برگزین تا چشمان خودت در یابد که چگونه جی را از عجی میتوان باز جوید زندگی فضایی را از زندگی زدار زداره از هم باز چرون خوبی و بدی در دنیا چیست خوبی آن است که زندگی را می‌آپسايت بدی آن است که زندگی را می تو باید مثل اعلی جام جام یا چشم خورشیدگونه یا گوهر شب چراغ بشوی. نایی که پیامبر باش نه تو باید نمونه باش سرمش خوش تا دیگران بدانند که چگونه میتوان جام جمع را بدست آورد. چگونه میتوان چشم خورشیدگونه را به آورد؟ برای این کار راهی را برگزین. ببین نمیگوید این را برگزیند و از اون دوری کن میگه راهی را برگزین که در اون راه که اون راه جست جست راه پر از است چشمت یاد میگیرد چون باید ببیند پر از شیر و دی و پر تیرگی بماند بر او چشمت از خیرگی پدیده های میبینی رویدات میبینی که چشمت در آنها خیره میشه به بونبست بکن گیج میشه مات میشه وقت چشمت یاد میگیره خرهدت یاد میگیره چجوره از میتوان بیرون آمد نه که بیای پهلو من من یادت بدهم این کار را بکن و اون کار را نکن من چنین هدایتی نمیکنم من چنین علمی به تو یاد نمیدم رستم این خیشکاری رو از جفت سیمر از سی که انسان شده است میپذیرد و در این خانه بارها پدیده‌های های جی و عجی زندگی و زد زندگی را که با هم آمیختند با آنها روبرو برو میشود تا آنکه به خان شیشون میرسد در خان ششم که و سپاه ایران را که چشمانشون کور شده است میابه و در این خوان است که کاووس به رسم میگوید که سپهر را زقم چشم ها تیره شد سپه را زقم چشم ها تیره شد مرا چشم در تیرگی خیره شد پزشکان که دیدم کردن دومین پزشکان که این چشمها را دیدم مرا امیدوار کردند به خون دل و مغز دیو سفید چنین گفت چنین گفت فرزان مردی پزشک که چون خون او را به سان سرش چکانی سه قطره به چشمان در تیرگی پاک با خون برون شبت تیرگی پاک با خون برون همه سه قطر خون دیو سیپید را اگر بریزی در چشمت تمام تیرگی از چشمت بیرون میده. برد. آنگاه رستم در خان هفتم دیو سیپید را در قار تاریک میاد. باره تاریخ چیزی نمی شود دید رستم هیچ نمی بیند مثلا دیوی سوید رو نمی بیند این است که چشمهایش را می مالد. با آب چشمش با آب چشم خودش چشمش بینا می شود ببینید چشم تخمه تخم چشم با آب چشم خودش این خیلی معنی دارد با آب چشم خودش از چشم خودش آبیاری می شود و چشمش روشن می شود و اون وقت است که دیو رو این دوستانی که فلسفه ایران رو در مقابل افلاطون روشن می کنن کاملا فلسفه دیگری که نیاز بررسی مفصلی داره به تاریکی اندر یکی کوه دید در تا اون وقت است که در تاریکی چی میبینم یکی کوه دید سراسر شده قار از اون آپدید به رنگ شبه روی و چون شیر موی رویش سیاه مثل شبه و مویش مثل شیر سفید جهان پر زبالا و پهنای او دیو سفید روی سیاه و موی سفید داشت ببینید همین به همین شیوه زار در, در داده شدن چشمان سیاه و موی سفید داشت اون هم به عنوان دیو در جامعه اش مورد تهمت و آزار قرار گرفت و او را بیرون انداختن او را دستور دادند که باید کشته بشود اینجا ببینید مسئله خیلی حساسه این روی سیاه و موی سیفید در دیو سفید، این یوغی می شود که با هم ناجورن یعنی ایده زرداشت یعنی دو چیز با هم ناجور در زال زر یوغی می که با هم همه هنگن. این اینست که در او علت پرزانگی می شود در این علت تخریب می شود حالا این البته خواهیم گفت دیوی سیفید چی هست و اینها سی سیفید در مرحله اول پیکریابی خود روان کیکابوس و تپایان ایران هست چون که دو چیزشان با هم متضاد شد سلاح و اصلهشون با خونخاری خونریزی نماد قهر شد و جگر و دل و مغزشون که نماد مهر بود و نماد بینش بود در تضاد با آنها قرار گرفت داستان به این شکل فرم باقعی میگیرد شکل باقعی میگیرد سوی رستم اومد کوهی سیاه از آهن ساعد از آهن کلاه حالا می در این داستان پا پاش و دستاژ دیوسفید آهنی است اینها از دوره میترائیس میاد در این دوره پا و دست آهن و پولادان یعنی چی یعنی نماد تجاوزگری و نماد سخت, سخت بودن و نماد تجاوز و پرخاش می شود در... که همین که کابوت همه نقش را عملا بازی کردن یعنی از اون ایدئال پهلوانی دور شدن به ایدئال ارتشین نزدیک شدن به نیروی رستم ز بالای اون رستم چی کار کرد به نیروی رستم ز بالای او بیفتاد یک دست و یک پای او این رستم دست و پای او را میبرد یعنی اون چیزهایی که آهن است اون چیزهایی که پولاد است اون چیزهایی که قهر است پرخاش کنی از وجودا می‌کنه بریده وقتی که دیو سفید بریده با او به هم چوپیل سرفرازه سرافراز و شیر دجم فرو برد حالا اینجا البته داستان شکل پهلوانی میگیرد فرو برد خنجر دلش برداری جگرش از تن تیره بیرون کشی اگر در سراسر این داستان توجه بشود, بشود دیده میشود که جگر و دل در یک جا با هم میاد و جگر و مغز جای دیگر با هم میاد این دو دوتا دوتا با هم گفتن این در هومر هم هماسه هومر هم هست به جای این که ستا را با هم بیاورد دوتا دوتا را با هم میآورد. حالا ولی مقصود این ستا با هم هست یعنی با در واقع با خون جگر و دل و مغز هر, هر سه با هم کار دارد بر او آفرین خواند کاووسا که بیتو مبادا کلاه و سپاه کلاه معنای شاهی و حکومت دارد حق و معنای سلطنت نه معنای شاه را کلاه و تاج و تخت معنای حکومت دارد هزار آفرین باد بر زال زر هی به اون میگوید عبر مرد زابور سردگر سر ببینید امروز مردانی که فرهنگ ایران را یعنی این زابوری ها یعنی این سیستانی ها اینها چه در دوره شاه چه در این دوره با چه وضع افجی ای زندگی میکنن ما فرهنگ من را ملت مرهون اینها هستیم به جای قدانی به جای آباد کردن اینها هر دور اون رژیم اینها را با کلی نادیده گرفته بود این رژیم دارد در اونجا با وارد کردن جامعه شیعه بر ضد جامعه, جامعه موجود در اونجا فتنه می میکند و مردم را بدبخت و بیشاره میکند این آفرین گویی این سپاسگذاری از ملتیست از است که ایران را هزارها نگاه داشته است ما باید رسم سپاسگزاری یاد بگیریم ما باید رسم آئین آفرین گوی آین تقدیر یاد بگیریم هزار آفرین باد در زال زر عبرمرد زاغل سر و سر دگر که چون تو دلیری پدید آوری همانا که چون تو زمانه ندید کنون خونش آور تو در چشم من کنون خونش آور یعنی خون این دیدن سفید را خون جگر و دل و مغز را همان نیز در چشم این انجمن نه تنها در چشم من بلکه در چشم همه سپاهیان ایران مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جان آفرین یار تو به چشمش تو اندر کشیدند خون شدن دیده تیره خورشیدگون بهمن این همانی با جگر دارد خداهای خرد عسل مهر خدای بینش کجرا نیستند. دل این همانی دارد با سیمرو و مغز مزگا یعنی حلال ماه مز ماه دکا یعنی زهت یعنی نای یعنی حلال ما یعنی ما ما را این همانی با خرد میدادند اصل روشنایی می شوندن. اینها که این هر رام بود اینها سه اصل دنیا بود سه بونه دنیا بود خون این ستارا در چشم اینها میریزند یعنی چی از سر با خداوند با بن دنیا آمیخته میشند آبیاری میشن از بن دنیا و چشمش در کشیدند خون شدان دیده تیره خورشیدگون اوس و همه سپاهیان ایران نگهبانان ایران دارای چشم خورشید شدند دارای جامع جمع شدند خورشید هم نور میتوکرات هم همه دیتی را هم روشن میکنن هم میبینن این کاریش که جامع جمع کیکاووس با فضون خواهی ببینید حالا مسئله دیگر تر میشه هی کابوس با خودون خواهی و با سبقت جوییش میخواست از این اون پیش بزند همه رو پشت سر بباده با این سبقت جویی با این شاه و تماشا با این بازیگری و نقش بازی شکست میکنه و با سپاهش اسیر میکرده ولی رستم بی آن که از کسی سبقت بخواهد بجوید و فقط برای بینا کردن چشمان نگهبانان ایران چنین راهی را برمی و گستاخانه خطر می‌کند فتح مازندران بحرش می شود ببینید مسئله این نیست که آدم پودون بخواد مسئله اون است که در فکر سبقت جویی نباشد این است که پتح چه مازندرانی مازندرانی که همون زو ابا نوزر و کیق و چه چمای بزرگان که دارم بیاد عبا و گشن و گرز گران نکردند آهنگ مازندران که آن خانه دیو افسونگر است تلسم است و در بند جادو در است مران بند را هیچ نتوان گشود مد رنج و زور و درم را به باد مران بند را هیچ نتوان گشود مد رنج و زور و درم را به باد ببینید کار محال کار محال را بدون فدون خواهی میکنه. این رستم است که به کسی صفقت نمیشوید و با چشم یا خرد خودش تاریکی های زندگی را می و با دیده هیچ کس راه نمی روید و عقل اسایی هم ندارد نه قرآن عقل اصاییش هست نه گاتا عقل اصاییش هست نه تورات عقل اصاییش هست و از چند آموزه قالبی که تو تیوار از دیگران آموخته است خود را بینانه میپندارد چند آموده قالبه از این فیلسوف و از اون دانشمند که یاد گرفته هست. این با اینها به فکر انجام دادن پیشرفت و کار و محال نمیپردازد. با همه این کارها این شاهکاری که محالی که رستم بدون سرسده انجام میدهد اسم تو هم نیست معرکه نمیچیند ولی هنگامه میکنه بدون اینکه که در دنیا را انداخته باشه برعکس حکومت های ما که همش مشغول کرد معرکه گیری هست این رستم است که با رادمنشی در هدیه دادن جامجم یا بخشیدن چشم خرشدگونه به همه چشمی که بی باسته هستی را می تواند ببینه کاری را می کند که جمشید و فریدون و منوچهر و کهی خباد و, و, و نوسر نکرده بودن ببینید همه میان یک آموزه میدن به مردم یک شریعت به مردم عقل همه عصای میکنن اینقدر محرکه تو دلیا را میاندازن که ما حجتیم و رسول خدا هستیم و مظهر الله هستیم و فلان و اینها رستم میاد چشم گونه به مردم مفت میدن رایگان میدن خرد مردم را به خودندشی برمیگنگ زد و هیچ هنگامه نگیرم نمیگیرن و هیچ از این هنگامه ها هیچ کدام از این ایران شناسان با غیرت ما بحث هم نمیکنه از این و شناسان دانشگاهی ما بحث این را هم نمیکنه اصلا لایق بحثم نمیدان پهلوان کسی است که چشم گونه یا چشمی که از خودش همه جهان را رو روشن میکن و با روشنایی آن همه پدیده‌ها و رویدادها را رو می بینند. این همون جام جمع چنین چشمی را رستم هدیه می و نمیگوید بیاد آقا تابع من بشید تسلیم من بشی تسلیم ارتا سیمرغ بشی هیچ نرقا رو نمی زن. من مرشد شما هستم من حجت الهی هستم من منجی دنیا هستم هیچ کدام اینها رو نه من منجی همه شما از بدبختی و اثارت هستم ببینید هیچ این سرسده ها و معرکه ها را راه نمیانداختند شاید برای خاطر این معرکه ها رو را ن... راه نمیانداختند نه شاهنامه شناسان ما نه ایران شناسان ما نه متفکرین ما نامی هم از این رستم نمیبرند فقط یک فهروانی بود که این را فردوسی به زور با شعرش پهلوان ساخته است و هنچین پدیده ای فقط است که در خیال خامر بردوسی بوده این حرفیست که من بارها با گوش خودم از چنین روشنگرانی چنین روشن پکرانی شنیدم چنین آرمانی از پهلوان بینش را مردم ایران داشتن و تصویر پیامبر و فرگذیدی اهورامزداو رسول الله را نمیپذیرفتند. میان این دو آرمان ورطه بسیار جر و هرناکی بود این است که ما بایستیم این ایدئال و آرمان پهروانی را به دقت این است که ما با ن ایدهال و آرمان پهلوانی رو به دقت از سر مورد مطالعه قرار بدهیم